ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک و رویاوردن پاچاه به درگاه خدا و در خواب دیدن او ولی را. شه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا پابرهن جانب مسجد دوید، رفت در مسجد سوی مهراب شد، سجدگاه از اشک شه شد چون به خیش آمد ز قرقا به فنا خوش زبان بکشاد در متک و سنا که کمین بخششت ملک جهان من چه گویم چون تو میدانی نهان ای همیشه حاجت ما را خناخ بار دیگر ما قلط کردیم را لیک گفتی گر چه سرت زود هم پیدا کنش بر ظاهرت چون براورد از میان جان خروش اندر آمد بحر بخشاگش به جو در میان گریه خوابش درو بود دید در خوابو که پیری رو نمود گفت ای شه مجده حاجاتت رواست گر قریبی آیدت فردا زماست چون که آید او حکیمی حاضق است صادقش دان که امین و صادق است، در علاجش سهر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین، چون رسیدن وعدگاه روز شد، آفتاب از شرق اخترسوز شد، بود اندر منظر شه منتظر تا ببیند آنچه چه بنمودند سر دید شخصی فاضلی پرمایی آفتابی در میان سایی میرسید از دور مانند حلال نیست بود و هست بر شکل خیال نیست وش باشد خیالان در روان تو جهانی بر خیالی بین روان بر خیالی سلحشان و جنگشان و از خیالی فخرشان و ننگشان آن خیالاتی که دام اولیاست اکس مهرویان بستان خداست آن خیالی که شهن در خواب دید در رخ مهمان همی آمد پدید شه به جای حاجبان واپیش رفت پیش آن مهمان غیب خیش رفت هر دو بهری آشنا آموخته